بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین و آله و صحبه اجمعین اما بعد امروز آخری مطلب داریم از نشانه های قیامتی که در حال رخ دادن دیگه دو مطلب دیگه میمونه بعد از این نشانه های قیامتی که هنوز رخ نداده از صغراش و نشانه های کبرایی که در حدیث داشت شده به اسم کبراه از ظهور دجال و دعجوج و و نزول ایسا و مطالب انشاءالله بعدا بهش خواهیم پرداخت. ما نشانه های زیادی داشتیم اونطوری که در احادیث اومده از رسول الله صلی الله علیه وسلم از احادیثی که ما داریم از نشانه های قیامت قبلن قسمتی از اون خونده شده حدیث ابن مسعود هست در صحیحه که اصل رواتش در مسلم و محمد هست و همچنین حاکم رسول الله صلى الله عليه وسلم می فرمایان ان بین یادی الساعه تسلیم الخاص و کشو تجارت تا تعین المراه زوجها علی التجاره این قسمه ترموقتين قبلان از نشانه قیامت سلام خصوصی کسی که نمیشناسیم سلام بهش نمیگیم كنم. کسی که میشناسیم فقط بیش سلام میگیم و بحث تجارت هر کسی وارد تجارت میشه و اینکه حتی زن یعنی تجارت اونطوری دو سرش مییابه که رسول صل الله صلی الله علیه و سلم می زن میاد همکارش و هرش میشه بر سر تجارت و قطع الارحم و شهادت و زور قطعه سلی رحم رحیم قطعه میشه کسی قطع دیگه اماش پسر اماش دختر اماش اماش و ما اصلا نبراش مهم مهمه نه میگیره و نه هم میدونه شاید هر کنوم یک, ب... یک طرف استادن و این از های قیمتی که الله ما داریم میبینیم و شهادت و زور شهادت زور گواه به ناحق ما خداوند ازمون خواسته که گواهی که میگین گواه به جواه حق باشه ولا تکتم الشهاده شهادت و گواهی ولی یک مسئله کتمان نکنید گواه به حق یعنی کتمارش نکنید اینجا در حدیث رسول الله صلی اللہ علیه و یاد میکنه از جمله نشانهای قیامت بحث گواه ناحق حالا این گواه ناحق میتونه صورت های متعدد مختلفی داشته باشه گواه ناحق در امور دنیا مثلا شخصی با شخص خصوصات داره یا شخصی زمینی داره در روستای شهری میاد شکایت میکنه به دادگاه برای اینکه اون زمینی که مال خودش نیست او تصاحب بکنه حالا زمین مال شخص دیگه هست شخصی میاد گواهی میده بدن اون شخصی که الان غصب کرده میاد گواهی میده که بله من گواهی میدم که این زمین مال اینه این گواهی ناحق الا هر گواهی که باشه بناف یک شخصی بناحق دادن. تازیی که هم میدونه رشوه میگیره به اینکه که به ناحق شک بده اونم گواهش ناحقه اون کسی که یک مسئله علم توش نداره بدون دلیل حرف میزنه گواهش ناحقه حرفش ناحقه سخنش ناحقه علم نداره میاد اجتحاد میکنه در مسائل حلال و حرام این حلال این حرامه بدون اگه چیزی از اصول شریعت بدونه از قرآن و از سنت بدونه میاد بر یک مسئله خکمی دید خکم گواه بنامحق حکم، شما دارید خکمی دید این میخواد خکم دنیای باشه یا میخواد خکم شرعی باشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمید من اقتطع حق امراء مسلم بیمینه فقد اوجب الله بیها النار وحرم حرم علیه الجنه کسی بیاد قسم بکره در امور دنیا مثلا زمینی را زمینی را بنافع یک دیگری حق بده گواه بده با قسم این شخص خداوند واجب کرده برش که جهنمی بشه و بهشتش رو بر برش حرام کرده خداوند یک تا. قال الله رجل وان كان الشيء يسير يا رسول الله حتى اون زمین کوچک باشه قال این قضيبا من اراكل حتی اگر با اندازه یک سباط دیدید از اراک با اندازه یک سباط باشه یک عودی باشه با اندازه یک انگشت باشه احادیث یاده حدیث عمران المحصنین این حدیث کلی فندی حدیث ابو در مسلم حدیث داری من حلف علی یمین مصبورا کاذبا فا بوجه مقعده من النار مستحق جهنم این کسی که با قسام می خرد حق, حق, حق بکنه من حلف علی یمین لیطع بها مالا لقی الله هو در مال در زمین بود اینجا در مال در مال شخص ملاقات بر او حاجی جان همساری ما دو صد مورد دیگه داریم این از بحث نزدیک شدن روزها و در صحیح بخاری لا تقوم الساعة الله وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويتفر الهاد وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيبيغ. قیامت برپا نمیشه تا اینکه ال برداشته بشه علم شرعی منظوره و زلزله ها زیاد بشن بسیار بشن زمان به هم دیگه نزدیک بشه اینجا به طور آم اومده تفسیرش در حدیث بعدی خواهیم داشت از علی زهروره رضی الله ها زیاد میشه هرج و مرج قتل زیاد میشه و مالم زیاد میشه اینا نشانه قیامتی که در یک حدیث اومده در همین روایت از روایت ابوهریره در جای دیگه این اینجنین اومده لا تقوم مستی حتا یتقارب الزمان قیامت برپا نمیشه تا زمان به هم دیگه نزدیک بشه فتكون السنة كالشهر. زي ويكون الشهر كالجمعة. زي زي وتكون از سنتو کهشه یک سال اندازه یک ماه. و يكونون شهر و کل اندازه یک ک یک ماه اندازه یک کفه و جمعاعت جمعه جملت جمعه جمع آینده مثل یک روز. واکون الیوم و کسه روز میشه باندازه یک ساعت. وتكون ساعت و که اشتراق اول اوقوصت. یه چوبی یه چیزی هیزممی آتش میگیره قیامت اینجوریه وقتی که نزدیک میخواد بشه دیگه زمان به هم دیگه نزدیک شده. سال مشت یک ماه شما باور دارید همین چند دقیقه خودمون رمضان روزه گرفتیم نماز و تهجد خوندیم چند ماه دیگه برم از اون مونده سه ماه دیگه بیشتر شهر رمونده دوباره واسه نماز اومد چیکار کردیم تو این هشت ماهی که گذشت از رمضان سال تب تا الان هشت ماه گذشت از هر کسی بپرسید میگه یک چشم هم زدن بود که نمیدونید کی رفت چیزی که تازه از روز بیرون اومدیم. این از نشان قیامت وقتی برکت شده وقت بیبرکت شده شخص نمیدونه قدیمه اگر من نمیگم الان قدیم من خودم بین جامعه خودمون بین جامعه که من تحصیل میکردم تو سودان اونجا برق حیقت میشد برق نداشتیم 6 ساعت چهار ساعت تو روز برق نداشتیم امکاناتم مثل اینجا نبود یک زندگی خیلی ساده خیلی ها مردم یخچال نداشتن تو خونهشون توی کوزه ها آب میخوردن توی دانشگاه ها قوزه های بلند و بزرگی گذاشته شده از اون آب می نوشن آب سرکنی نیست نیازم ندارم با آب سرکنی وقت اونجا برکت داشت شب که میشد میگفت می خدا که روز میشه روز که ویدار میشد میگفتیم می خدا که شب میشه خب برق نبود آرامش نبود مثل اینجا کلر شخ... شخص راحت بخوابه خوابه کلر وقتی که میذنه دیگه و زیر اون پتو نمیخواد سرتو بیرون بیاری خوابیده شده سنگین از آبارش هم شب نشستی تا ساعت یک شب دو شب نمیدونی داری چت میکنی هی می نویسی میاد پیام میره یهو می بینید ها میالا چشان داره بسته میشه چش سنگین شد میخواوی صبح دیگه الله الله بزرگ بلند باشیم زندگی ما اینطوریه تکنولوژی و مدر بودن ما داریم تابارش رو پس می وقتمون وقتیمون بیبرکت شده داره هی میره با صحبت کردن و با حرفای مفت و با وقت طلب کردن نمیدونیم دارین هی داره هی وقتمون میره حالا شما در نظر میگیرید همین دیروز بود که ما نماز جمعه خوندیم حالا ببینید جمعه آینده او دوباره جمعه اومد از نشانه های قیامت بحث قدیمونیشون با چهل زبانی شخصی چهل زبون داشته, داشته باشه یعنی چی زبان چرمی داشته باشه بتونه با اون زبان چرم و نرمش حالا مال کسی را غصب بکنه بخاطر کالای خودش رو بفروشه به خاطر شرکتی کلاه بذاره گول به کسی بده فریبش بده چون قدیما قدیما اینطوری نبود ولی الان برید وارد بازار بشی مثلا از فروشی رفته میخواد مجموعه از را بخری مثلا طرف درست اثر میاره این اثر نمیدونم از اسوره یک گل از نمیدونم از فرانسه هست نمیدونم گلش طبیعیه گلش فلانه یکطوری به طالب میکنه که سرت شیر میمونه که اصلا حواست نیست اگر كده ده زورتان بشترني سر زورت من ميخري قالو بسرده سرت کلا گذاشته با زبان کرش آن زبان که در حدیث میاد لا تکوموا ساحه یخرج یخرج قوم یاکلون بالسانتهم قیامت دار کو نمیشه تو اشخاصی بیان رزق با زبانشون باشه یعنی با زبان خودشون بخان بخورن منظور قاسیبی بکنن با زبان خودشون کما یاکل البقر بالسانتها منظور از این حدیث حدیث دیگر بازهش میکنم که این حدیث در مسند محمد حدیث دیگرم بودم در مسند محمد حدیث عبدالله بن عامین حدیث سعد بن إبّو قاصد حدیث عبدالله بن عامین که مرسلا صلّى الله عليه وسلم ان الله عز و جل يبغض البليغة من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها خوداً بغضر و شخب و بليّ از مردم اِنَّمَا الْبَيَانُ لَسِخْرَةَ حقيقة دیگر بعض از بيانها سهر و جادو تو شفنی شخص شیفته یه حرفش میشه از شیفتگی و شیرینی یه حرفش گولش میخوره از امدل فرض من شیرین زبان بودم اینجا ده تا حدیث دروغ بهتون میدادم قالبتون میکردم بابر میگردید هستورا جامعه مگه ندیدید یه شخصی بلند میشه ده تا حدیث میخونه از حدیث دروغی قالب میکنه با اون تحته و چهچه هم میزنم براش چه صحبت, شیرین داد؟ چه شیرین صحبت کرد؟ چیه؟ احادیث دروخ به خوردشون داده رسول الله صلی اللہ علیه وسلم خداوند بغض داره. اون شخص بلیغ از مردم که با زبانش مثل گاو زبان چربی میگنه با زبانش سر مردم شیره میماله گولیشون میده فریبیشون میده این از های قیامتی حالا گفتم چه میخواد در مسائل دین باشه چخص بیاد با قصه گویی و براجی کردن فلانه اینطوری شد فلان جا ا با گفتن احادیس دروغ از خودش یه چیزایی در بیاره و بگه مسی تو یک مسئله نجاستی بودی کادای مصلی نبود بلند شد صحبت کردن گفت که بحث به پیش می‌رفت گفت میدونید بهش جید. چطوری نعمتاش ماشین رو دیدید ها اونجا از شیشه ساخته شده میدونی شیشه چه رنگیه شیشه قرمز یاکوت فرمونش میدونی داری؟ تو داریه بس واسه فرمون. فرمونش ناپرید که دیگه اینطوری نیست فرمورش لمسیه فرمورش که با دست بگیری نیست یکم سرات پایین بیاری ماشین میاد پایین سرات بالا بیاری ماشین پرواز میکنه روی درخت های بهشتی از این درخت به اون درخت چقدر جالب نه؟ جر فیلمی ماشین از شیشه قشنگ پرواز بکنه فقط با تکون خوردن. دارن کسانی که نشستن چه حدیثی چه وصفی از بهشت این چیزهایی هست که متاسفانه ما تو جامعه بینیم جای تأصفه و جز نشانه های احادیثی که هم در گفتم در این باب و زیاده شرار امتی الترفارون المتشدقون المتفیقهون و خیار امتی حسن و اخلاقه و احترین امت بحث سرسارون سرسار اونا که خوندی تو شرح ریع صادحین تو مقدمات خوندید فقط اون چیزی که محل شاهده و متفایقه هون کسانی که خودشون در منصب علم قرار دادن مثل این که فقیحا در همیشه از دین میدونن خودشون فتوه میدن، حدیث رو به کیف خودشون تفسیر میکنن آیه قرآن رو خودشون برای خودشون تفسیر میکنن مثلا و و فصاله ثلاثون شهر مياد یک تفسیری میکنه. اربعین از قرآن میگیره جنین در نمیدونم در شکم مادر 40 روز طی میکنه تا مرحله دیگر بیاد سه تا چهل تا طی میشه تا روح درش دمیده بشه بعد میاد تق... بر اساس این 40 روز میاد فتوام میده میگه بله ناگورید عدد 40 عدد مقدسیه با شما 40 روز از سر دمیل خودتون دور بشید با 40 روز برید به یک جای وقتی که رفتید اونجا مثل یک جنینی که یک مرحله خداوند گفته مرحله از مرحله دیگه مدغه شده عظام ثم كسونا العظام لحما اونجا هم اینطوریه الان این اصرالم درسته به نظر شما جنین چه روز یک مرحله از مدغه میشه ثم كسونا العظام لحمه از مدغه معلقه و فلان 40 تا 40 عوض میشه انسانم نیاز داره برای عوض شدن 40 روز از زمین از شهر خودش بره دور یه جایی تا سپری بشه و بعد این ناپدید قیاس علکیه این فتوا دادن و اجتهاد کردن در دین بناحقه به دروغه دلیلی نیست اصلا بحث جنین چیز دیگه است بحث تشکیل جنینه خلقت جنین اصلا چرابطی داره باید برخذر باشیم و بپرهیزیم از اینکه سخنی بناحق بزنیم و اینکه دروغی از ما صادر بشه این خلاصه بحث نشانهای قیامتی که ازش مینالیم از نشانهای قیامت کلخی که دست و پنجو داره بحث نرم می‌کنی صلی الله علی, علی محمد و علی محمد